بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآلهم وصحبه أجمعين أما بعد سيزهومين درس درسويش شمويل رسول الله عليه الصلاة والسلام أز كتاب الإمام الترمزي كتاب شمويلش يزهومين بابهاستيم دردماية حديث قبلي حديث أشد شهارون الإمام الترمزي رحمه الله مجيد حدثنا قتيبة عن مالك حا وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتع لأحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع حديث دار البخاري مسلم صحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنك يجاب دوتا إسناد إمام ترمزي ربا أدنكنا از مالک با دو تا اسناد هم از طریق از مالک هم از طریق از حق و از من، از مالک با دو تا اسناد از ابو حریر رضی الله عنه که ابو حریر میگید رضی الله عنه که رسول الله صلی اللہ علیه وسلم فرمودن اگر دنپایی پوشیدید اول پای راس را بپوشید. یعنی اول با پای راس دنپایی را بکوشید و ایدن ازا اگر دمپای راست بیرون آوردی، فلی آب داشته می‌کنی، اما قبل پای چرب را بیرون بیاری. آدابه، آدابه پوشیدن دمپایی. با پای راست بپوشید اگر بیرون آوردی، با پای چپ بیرون اول بیاری. فل تکون لیوم نه اول همه تون عال. همیشه با پای راست اول بپوشید دمپای رو. کفش رو. هر چیزی خف را و رو اول با پای راست. حتی شام پوشیدن، حتی خمیس پوشیدن، اول راست. و آخرش هم در بیرون آوردن هم آخر هم راست باشه. میخواد پیراهن تو بیرون بیاری، آخر زمتر راست. دمپایی جوراب کفش، شلوار اول پای چپ اول دست چپ بعد دست راست و پای راست این تکریم گرامی داشتن راست راست مکرمه در شریعت ما در دین ما رسول الله صلی الله علیه و موهاشو با سمت راست شونه میکردن، میتراشیدن لباس را با دست راست می پای را هم هم سنت فعلی هم سنت چی قولیه اینجا دو با حرفش سخنش با گفتارش داره بهمون توصیه میکنه و ما یک قوم با ادبی ما یک قوم با ادبی، یک دینی داریم که در اون آداب و رسوم بهمون به یاد میده. ما یک قوم بی ادب نیستیم. بی ادب اون کسی که علم نمیآموزه، یاد نمیگیره. الان اگه یک شخص بگه بی ادب بهش برمیخوره. خب بی ادب هیچ خاصن از زندگی نمیدونه. از آداب و رسوم، تعامل هیچ بلد نیست. بچه‌ایه منزوی تو خونه نشسته، نه حدیثی شنیده، نه آیه‌ای شنیده. هیچ از دین و آداب و رسوم هیچ چیز نمیدونه. بعد اون پدر هم اگه بهش بگه بچه‌ت بی ادب برمیخوره، خودش بی ادب، هم بی ادب، هیچ از آداب و بلد نیست. این واقعیت حال امروز جامعه است و هم چیه؟ وقالت العرب آمنا قل لم تؤمنی ولكن قولوا اسلمنا چون همه واقع حال مردم مثل بادیه‌نشین‌ها های زمان رسول الله علیه و السلام که به حلقات علم نمیومدن هیچی یاد نمیگرفتن بی ادب بودن. ادب از کجا آدم یاد میگیره؟ از همیشه یادن احادیث و درس. اونها در حلقات رسول الله علیه و السلام شرکت نمی که این حرفا رو بشنونن. الله چه بهشون میگه؟ میگه شما اعراب ادعا دارید نه شما مؤمن نیستید. چی؟ سلمان به ظاهر مسلمانید ظاهرتون اسلامه قلب و دل و ایمانتون که باید با اون علم شکوفا بشه نیست نشده تعاللت العرب اما نه قم تو ولكنلاکن قولو اصلا نه حقیقتش اینه که شما مسلمانید ایمان در قلبتون نفوذ نکرده قلبتون با ایمان شکوفا نشده چون اون ایمان علم را شکوفا میکنه علم نباشه اون آدا بر و اون چیزی که ایمانت و دینت را به کمال رسونه تو نمیتونی یاد بگیری اگر حلقات علم شرکت نکنی پس اینجا توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم به تکریم راست در پوشیدن دمپایی و غیر دمپایی هم میتور گفتیم پوشیدن لباس، وارد شدن به مسجد، وارد شدن به منزل، خارج شدن از دستی با پای راست باشه. ولی ورود به دستی با پای چپ، خروج از مسجد با پای چپ، پای راست آخری باشه. تکریم راست درش. منزل هم میتور دمپایی هم میتور هاشتادو بانجمين حديث إمام الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال حدثنا أشعث وهو ابن أبو عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمون مستطاع في ترجله وتنعله وطهوره حديث قابلان داشتين صحيحة حديث اینجا هم اون هست هست ها حدیث ابو هریره هم در همین مضمون ما داشتیم و قبلا یاد شد که رسول الله علیه و السلام دوست داشت کارهاش با دست راست باشه الا استثناء در بعضی از جاها دوست داشت در سرشونه کردن پوشتن دمپایی در تهارت غسلش وزوش همش سمت راست شروع بکنه الا استثناء در چی بیرونوردن دمپایی اول چپ وارد شدن دستی و پای چپ اینجا استثناء شده ولی اصل احس چیه اصل اینه که اون چیزی که درش تکریم، اون چیزی که درش تزیین و زیبایی هست، غیر از اون شستن و نجاسته. پاک کردن خودت از نجاست با دست چباط باشه. ولی که اون جایی که بحث زیبایی هست، قشنگی هست، اون بحث خوبی هست، دادن یه چیزی به کسی یک یا گرفتن یه چیزی باید چی باشه؟ با دست راست چون اکرامه درش، تکریمه یک شخصی یه چیزی داره بهش میدی یا یه چیزی از کسی میگیری، باید با دست راست باشه. تا جایی که میتونست رسول الله علیه و السلام این سنت را عملیش میکرد بعد یک مسئله ما اونجا تو پرانتز گفتیم اینجا هم بازم یک سری امور هست از رسول الله علیه و السلام نیومده مثل ساعت مثلا امروزه پوشیدن یک ساعت الا به کدام دست باشه به راحتی ما برمی‌گرده. جزء امور مباح. اینی که ما بگیم سنت با دست راست پوشی نه. این قول که بگیم سنت هستن در امری در زمان رسول الله صلی و السلام نبوده این چیزی. این قضیه سخت نمیگم بدعت یا خلاف سنت جز امور مباحه تو اجازهش داری به دست راست بپوشی اجازه داری به دست چپ بپوشی نه این سنت نه اون سنت حالش مثل حال مسواک زدن توصیه رسول الله صلی الله و ما به مسواک زدن لولا اشق على امتی الامرهم بالسواک عند کل صلاه او عند كل, كل وضوء اگر مشاقاتنا بر امتم میگفتم که برای هر نماز یا وضوء مسواک و ولی خب با دست راست و دست چپ یکی میاد میگه نما مصحبه و دست راست یکی میگه چون از باب خوشبوئی یکی میگه نه از باب پاک کردن باب دست چپ باید دس باشه ایماده توصیه که بر کدوم دست باشه، با این دست باشه، با اون دست باشه. این امور را نباید ما سخت بگیریم برش، در اون اموری که شرع برش ساکت شده. اون اموری که اومده با دست راست، سر و چشم مثل پوشیدن لباس، پوشیدن دمپایی، شونه کردن، دست راست اومده و اون جایی هم اومده با دست چپ، رو سر و چش. اون اموری هم که رها شده، نه چپ یاد شده، نه راست، همونطور به حال خودش رهاش بکنیم و خودمون رو ما فوق خودمو خودمو ما اون توان خودمون تکلیف نکنیم خودمون بر خودمون سخت نگیریم شرع بر ما سخت نگرفت هر طور که خودت راحتی گفتم در اون اموری که شرع بر تو ساکت شده یعنی نیومده به تکلیف بکنه و مین حدیث و مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن مرزوق ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس ابو معاويه قال حدثنا هشام عن محمد عن ابي الله عنه قال كان لنعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان و بكر وعمر وأول من عقد عقداً واحدا عثمان رضي الله عنهم أجمعين حديث زيفه منكر تو اسناد عبد الرحمن من القيس دارين أبو معاوية متروكة وترهام من حديث زعف الشديدة هارچانك ما قبلان داشتين در حدث قبلي كرسول الله صلى الله عليه وسلم دنبوهش دوبانده بوت همچنين أبو بكر و عمر انجو ازافه شده رسول الله صلى الله عليه وسلم بود عثمان اومد دمپایش را یک بند قرار داد اونا دو تا بند داشت دمپایشون اسما رضی الله عن اینجا میگه یک بند داشته ولی خب حدیثش گفتیم اینجا ضعیفه و ضعفش هم شدیده فقط یک عقد داشتن یک بند داشت الله اعلم یعنی یک قبال داشتن یعنی یک بند از از جلو باقی عقب اینها ده بود در باره دمپای رسول الله علیه صلات و السلام یک مثالی هست اینجا که قبلا هم شد شیخ عبدالرزاق هم در انتهای بحث دمپایی، بحث تبرک را میاره خصوصا اونجا که ما داشتیم بحث نگهداری دمپایی رسول الله صلی الله علیه و آله توسط انس رضی الله عنه تو این باب بحث نگهداری دمپایی داشتیم و قبلنا بحثه و مسلمه داشتیم که موی رسول الله صلی علیه وسلم در جلجله در یک ظرف کوچکی از نخره نگه داشت و می‌داد به مریضا که توی آبی بکنن و به اون بچه بدن اگر مریض بشود یا که هر کسی که مریض می‌شد و شیخ عبد اینجا حفظه الله اشاره می‌کنه ای می‌گه این فعل صحابه دلالت در این می‌ده که تبرک به آثار رسول الله صلی علیه وسلم چه از عرقش چه از آثار بدنش از قطعی از جسمش از مو یا نسبت اون پیرهانی که داشته که تنش به اون برخوردی داشته اینها جایزه و صحابه بدون انکار بر هم دیگر این کار را انجام می دادن. ولی که یک مسئله هست که اینجا میگه باید یاداوری بکنیم و اونم این که ما الان آثاری از رسول الله صلی علیه و وسلم که ثابت باشه نسبتش به رسول الله علیه السلام ما نداریم چرا نداریم؟ در اون زمان بوده ولی الان نیست چرا نیست؟ چرا نمیتونیم یقینم بگیم که این دمپایی رسول الله و السلام هست یا این شمشیرشه یا این لباسشه حالا در موزه هایی در عربستان یا در ترکیه ولیکن سند قطعی روش نداریم سند قطعی نداریم خب چرا نداریم؟ علتش اولا اینکه اون آثاری که صحابه نگه می داشتن اندک بوده یعنی <تصفيق> مثلا شما از بین همسران رسول الله علیه و سنت و صلی علیه دارید فقط موهای رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته بود در اون ظرف نخره‌ای نگهداری میکرد ولی بقیه همسران رسول الله الله علیه و سلم وارد نشده که داشتن از حلقش یا از موش اندک بوده حتی در زمان وفاتش رسول الله عليه الصلاه چیزی رها نکردنی چهار پنج دست لباس داشت یک دست لباس داشت در همین عمر بن حارث میگه ما ترک رسول صلی الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دینارا ولا عبدا ولا اما ولا شيئا الا بغلته البيضاء و وارضا جعلها صدقه رسول الله عليه وسلم بعد از اینکه فوت شدن چیزی رها نکن نه پولی در همین دیناری از نخره از طلا از برده از کنیز چیزی که داشی آزاد کرده بودیا از بردگان و یا اینکه که صدقه داده بود. رسول هستن چیزی از خودش به جا نگذاشته بود با وفاتش. و اون آثاری هم که گفتیم به صحابه نگه داشتن عدد کمی بودن از اون صحابه که این آثار را برای خودشون نگه داری دوم اینی که بعضی از اون آثار هم که بعضی ها داشتن یا گم شده و یا اینکه یک حادثه پیش اومده سبب شده که آنها گم بشه و الله از میان ما اون آثاره را برداره با یک حادثه مثل انگشت رسول الله صلی الله علیه و سلم با بعد از اوبک به عمر بعد از عمر به عثمان رضی الله عنهم مجمعی توی شهی میفته از دست عثمان رضی الله عنه بعد دیگه اون انگشت دیگه نیست هرچی هم دنبالش می‌گردن پیداش نمی‌کنن حادثه ای پیش اومده اون آثاره از بین رفته کم بوده از بین رفته جنگ ها بوده جنگها بوده که در اون جنگها ها زمانی که در انتهای خلافت عباسی ها تاتار میان حمله میکنن اون لباس یا ذره یا چیزی که از رسول الله صلی علیه و ازش در حراق نگهداری میکردن و بوده همه اونها را آتش میزنن تاتار از برد میبرن جنگ ها هم سبب شده که اگر چیزی از آثار رسول الله صلی علیه و باقی مونده از بین بره و حتی در حیات رسول الله علیه و سلام صحابه ای که هم آثاری از رسول الله صلی علیه و داشتن از باب تبرک میگفتن که با من دفنش بکنی سن لباسی از رسول الله صلی علیه و به دستش رسیده میگفتید در همون لباس برای دفن بکنین بالا لباس رسول الله علیه و سنت اون لباس هم دف شده خب چی مونده برای ما هیچ کم بوده حادثه پیش اومده از بین رفته جنگ ها آتش زده شده خب چیزی نمونده پس ادعای این که این همه آثار تو ترکیه نگهداشتهن این چم این لبase سه چار دست لباس اونجا گذاشتن برای رسول الله صلی الله علیه و آله و فوت میکنید دست لباس میشه نداشه این همه دست لباس از کجا آوردید شما سینا همه ادعاس سند قطعی نداره دل خوش نکنید و آرزو هم نکنید که حالا ما بریم ببینیم یا مثلا یک افتخاری باشه اگر اون بگیرید یا دستی بهش میزنید نه اگر سند بود بله تبرک بون درسته ولی چون نیست تبرک بون درستی نیست بعضی از اهل تصوف خیلی قلوه میکنن مثلا همین دمپایی رسول الله صلی علیه و شما برید تو گوگل اگر سرچ بکنید کشیدن شکل دمپایی رسول الله علیه و آله و روش اشعار نوشتن تو کجای پیغمبر که من خاک پاد بشم بعضیا هم پرینت میزنن برای خودشون که این دمپایی رسول الله شکلشه بر سر خودشون میذارن خودش رو تحقیر میکنن حقیر میکنن که <تصفيق> بگن ما برده پیغمبری ما نمیدونم خاک پای پیغمبری از اون اطراب و غلو و و نمیدونم از اون شعر سرایی جاهلیت از مدحو نه همه جز امور منکری هست امور منکری رسول الله صلی در آخر حیاتش ما رو ازش پرهیز دادن نصار اگر در عیسی علیه السلام غلو کردن اطراب کردن دیگه شما نیتر من اطراب کنیم زیاد دروی بکنید غلوگویه بکنید این غلو و متح و این ستایش ها را کنار بذارید و این گفتم یعنی یکی از درهای شیطانه که بعضی ها بهانه کردن بانوان ابراز محبتشون به رسول الله علیه السلام چون ما محبت پیغمبر داریم دمپاییش رو سرمو میزنیم اصلا دمپایی درست کردن مثل دمپایی که الان وارد شده که اینطوری شکل دمپایی رسول الله علیه سلیم بوده میزنم بر سرشون دمپایی رسول الله سلیم بر سر من چیه چون من محبت پیغمبر رو دارم فیلم نمایش این دین نیست این دیانت نیست این درش عزت و اون ابراز محبت نیست محبت رسول الله علیه سلیم با پایبندی به سنتشه دوازده باب دوازدهمین باب است کتاب شمائل رسول الله علیه الصلاه و السلام تألیف امام ترمذی رحمه الله وسنا فسیح جناته باب ما جاء فی ذکر خاتمی رسول الله صلی الله علیه و اون چیزی که در مورد انگشتر رسول الله الله علیه و وارد شده انگشتر رسول الله علیه الصلاه چطوری بوده تو کدوم دستش بوده راست چپ از نقره، از طلا غیر اون چیزی که در مورد انگشتر اومده ما انگشتر داریم خاتمه و فتحه داریم فتح بدون نگینه مثل حلقه بهش میگن الان برای عقد و ازدواج اینا مثلا میکوشن از عادات غربی ها که میگیم حرام است تشبه بونهاست این فتحه است حلقه است همینطور کشیدن مشکل نیست کسی خیلی انگشتری بدون اینکه این دست داشته باشه ولی اینکه بن عنوان یک امانتی یک رازی یک سری از ازدواج و نمیدونم از فلان و اینا که بین زن و مرد باشه اینا از عادات جاهلیت و از به مشرکین و غربیاست که حرامه انگشتری داریم پس بدون نگین که بهش میگن فتحه و انگشتری با نگین که بهش میگن خاتم حلقه‌ای که روش یک نگینی واقع میشه رسول الله صلی علیه و سلم از سال 6 هجری به بعد انگشتر میپوشند قبل از اون 19 ساله دعوتش انگشتری نپوشیده بودن چهار سال آخر حیاتش انگشتر پوشیدن و چرا پوشیدن هم خواهد اومد در زمینه احادیث بهش اشاره خواهد شد توصیه صحابه بود در مشورتی که به رسول صلی الله علیه داده بل قبل از اون رسول الله علیه و والسلام انگشتر نمی پوشیدن و از باب زیبایی هم نبود نیاز بود به عنوان یک مهر استفاده کرده بود از اون انگشتر به قصد تجمل و زیبایی نبود گفتیم لباس اصلش اباحته مباح بودن الله میخواد انگشتر باشه دمپایی باشه کلاه باشه عمامه باشه اصلش مشروعیته جایزه تو برای زیبایی بپوشی مشکل نداره رسول الله علیه و سلم ولی برای زیبایی نمی پوشیده تو میخوای بپوشی سنت نیست امر مباحیه الله برات حلال کرده جوزه لباسه جوزه پوششه چیزی که تم می پوشی مادامی که جنسش حرام نیست استلاه نیست بارتو جایزه که بپوشی هشتاد و حدیث امام ترمذی رحمه اللهم می گوید حدثنا قتیب بن سعید و غیر واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالک رضی الله عنه قال كان خاتم النبي صلی الله علیه و سلم من ورق و كان فصه حبشیه حدیث در صحیح مسلمه، یعنی چی؟ یعنی صحیحه، مطمئن؟ بله، شکی در صحت اسنادش نداری. انس رضی الله عنه میگید انگوشتر رسول الله صلی اللہ علیه و از ورق بود، یعنی ورق اینی نقره، جنسش نقره بود. و برای اون انگشتر نقره نگینی هم از... از سنگ حبشه انتخاب کرده بود. گفته شده که اون سنگ سنگ سیاه رنگ با خطی سفید که توش بود از صلاح. سنگ‌های زینتی ها که کلا قشنگه حالا گفته شده گفته شروحه یعنی چیزی در حدیث نیواده فقط تو شروح حدیث میاره اینجا فقط اشاره شده که چه نگینه اون انگشتر نخره رسول الله صلی الله علیه و سلم که از جنس نخره بوده نگینش حبشی بوده در شرح میارن که این نگین حبشی این طوریه. اهل حبشه، اون زمان اون نگینی که از اون سنگ خاص درخشان خودشون استفاده می‌کردن برای انگوشترشون اون نگینه سیاه و سفید بوده ولی سیاه غلبه داشته در اون نگین برای اون سفیدی خب این حدیث از فوایدش اینه که برای مرد جائزه که انگشتر از جنس نقره بپوشه و اینکه اون انگشترش نگین داشته باشه حالا قرمز حالا سیاه حالا سبز حالا زرد حالا فیروزه‌ای و آبی هر رنگی دوست داری این برای تو مباحه فقط یک مسئله هست که میاد در احادیث بعد که آیا تعارضی بین این حدیث و احادیثی که خواهد اومد هست که رسول الله علیه و سلام روی انگشترش هم نوشته شده بود محمد رسول الله و اون نگینش از جنس خود انگوشتر بود از نقره بود آیا اختلاف و تعارضی هم هست بین این روایت‌ها یا نه که بعد جنبندیش رو خواهیم داشت و مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا قتیبه قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما ان النبي صلی الله علیه وسلم اتخذ خاتما من فضه فكان يختم به یک زیاده اینجا تو پرانتز اومده ولا يلبسوا قال ابو عيسى ابو بشر اسمه جعفر بن ابي وحشيه طب خب، الحديث صحيح الا لفظ آخرش ولا يلبسوا ان حدیث صحيح چیزی که از عبدالله بن عمر وارده از انس بن مالك وارد شده که رسول الله عليه الصلاه والسلام انگشتری داشته از نقره و اون انگشتری هم برای مهزدم بود اون انگشتر برای مهر زدن بود مهر می‌زد نامه‌هایی که می‌فرستاد برای پادشاهان گفتین بعد از سال 6 هجری رسول الله صلی علیه و سنت انگشتر پوشیدن به خاطر اینکه نامه‌هایی که به پادشاهان می‌فرستاد با اون انگشتر مهر بزنه پس عبدالله بن عمر رضی الله ما میگوات که رسول الله علیه و سلام انگشتری را انتخاب کردن از نقره فکنه یختمو به مهر می‌زنه با اون انگشتره ولا یلبسو این لبس زایفه معلوله اون انگشتره رو نمی‌پوشید یعنی فقط صرفاً جهت مهر زدن بود نمی‌پوشید این زیادی شاذه شن مخالفه با دیگر روایت استقاط و اون چیزی که در صحیحین ما از الله بن عمر خودش الله بن عمر رضي الله عنهما در صحیحین داریم که میگوید رسول الله صلی الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق فكان في يده فكان في يده انغشتری الله و سلم اون انگشتر را یعنی در دست رسول الله صلی الله علیه و سلم اون ثم كان في يد وبكسبس او باكسبس عمر سبس او عثمان که بعد خواهد اومد بس این قسمت از شازه و مخالفت داره با دیگر روایت ثابت و صحیح از عبدالله بن عمر که رسول الله علیه و تسلیما انگوشتر انگشترا به دست کرده بودن این پوشیده بودن تو دستش و تو انگشتش بوده از اون انگشتری که به عنوان مهر استفاده می‌کرده هرچند که بعضی هم بیان گفتن که رسول الله علیه و تسلیما چند دین انگشتر داشته بعضی‌ها رو می‌پوشیده بعضی را نمی پوشیده. مثلا اون انگوشتر قبلی نگینش سنگ بوده سنگ حبشی خب به عنوان مهر استفاده نمی‌کرده چیزی هم روش نوشته نشده بوده اینجا این انگشتر نه روش نوشته محمد رسول الله بنوان مهر استفاده میکرده رسول الله علیه السلام. پس این انگوشتر غیر از اون انگوشتره. پس این انگوشتر غیر از اون انگوشتره. حالا اینه که تعلیلی که بعضی ها داره. پس چندین انگوشتر داشته اینچی این گفتن. بعضی ها گفتن نه. همون یک انگوشتره ولی که یه طرفش حالت مربع شد داشته یک طرفش مهر بوده یک طرفش نیگیم بوده. یک طرفش مهر بوده که به داخل کف دستش بوده و یک طرف دیگرش هم نگین حبشی بوده روش یک انگشتر راست اساساً بیشتر نداشته و همون یک انگشتر بوده که از دست عثمان رضی الله عنه میفته تو چاق و بعد گم میشه حالا هرچند که حالا اونم بازم توش یک اختلافی هست که آیا از دست خودش افتاده یا از دست کسی دیگه افتاده که خواهد اومدن در انتهای حادیث همین باب شیخ عبدالرزاق عبادی چند تا روایت میاره و حسین اون چیزی که از امام احمد نقل که اسناد بهش میکنه که این انگوشتری که رسول الله صلی و نمی پوشیده و به عنوان مهرت استفاده میکرده چون از آهن بوده کانل نبی صلی الله علیه و من حدیدن عليه فضه فرما به آهن بوده ولی خب لعابش نقره بوده به عنوان مهرت استفاده کرد این نمی پوشیده رسول الله صلی بعد رهاش میکنن و هرچنين ابن رجب هم میاره در احکام الخواتیم در کتابش کتاب احکام انگشتر داره کتاب به همین نام میگه ولعله هو الذی کان یخدم به ولا یلبسه احتمالاً همینه. این انگوشتری که نمی پوشیده این انگشتری که از آهن لعابش نقریه و رسول الله صلی الله علیه سلم استفاده نمی کرده ولی کن این روایتی که بهش اصطناد میکنه ما محمد مرسل ضعیفه و این زیادی هم که اینجا داریم در روایت عبدالله بن عمر که ولي هو هست این هم شاذ در نتیجه اون چیزی که اومده در بحث ها که چون آهم بوده و نپوشیده یا آهن درست نیست نه ما چیزی در من در پوشیدن انگشتری که از آهم باشه نداریم. برخلاف اون چیزی که اینجا یاد میکنه و یاد میشه و از ما محمد و بعضی از فقها هم که راهاتش مش موران بعضیان حکم حرمت رو بهش میدن نه خصوصاً اون حدیثی که داریم در صحیحین که التمس و خاتما من حدید به اون صحابی میگه که برای ازدواجت برو حتی اگر میشه هم یک انگشتری از آهنم پیدا کن دست خالی ازدواج نکن حتی اگر شده هم مهرت یک انگشتری از آهن باشه که کم قیمتو بهش و قیمتش کمه و اندکه هشتاد و نهومین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا حفص بن عمر ابن عبید هو التنافسی قال حدثنا زهیر ابو خیثمه عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه إن شو را بيش قديما؟ ان حديث حديث البخاري هم صحيحه اونجا ده حديث انس بن مالك داشتیم که نگينه انگشترش سنگ حبشي بود اینجا منه فصه منه نگينش از خودش بود يعني از جنس نخره بود نگينه این انگشتر الرسول عليه الصلاه والسلام الباني رحم الله انجا ميگه كه احتمالاً این انگوشتر رسول الله صلی الله علیه وسلم هر دو نگین داشته یک طرفش اون نگینی که از سنگ بوده یک طرف دیگر از جنس خود اون نقره به عنوان مهر استفاده میکرده که روش نق شده محمد رسول الله حالا میاد انشاءالله در نوع نوشتن محمد رسول الله چطور نوشته شده آیا الله بالاست الله پاینه با این هم شاء الله بحث شاهد که این نوشته چطور بوده ولی اون آدابی که هم متعلق بهش میشم خواهیم گفت که مثلا آیا درسته کسی اگر اسم جلاله و الله یا اسمهای الله روش نوشته شده درسته که به خلا بره به محل قضای حاجات با خودش ببره یا اینکه باید بکنه بیرون بیاری یا نه اینا همه در احادیث خواهیم داشت به همین قد فعلا اکتفا می کنیم سبحانك اللهم وبحمدك سبحان ربي الحمد و صلی محمد و محمد